شد از این قیرت رو بر آدم سند باقی بحث رو پیدن میذاریم بنده این بحث مربوط به تجلی رو پیدا کنم و سید نوح لاتی کنه بخونه دوستانم فصل نوزده در بیان تجلی ذات به صفات خداوندی غال الله تعالی لما تجلی رب حول جبلن جملهو دکن آه اینه کنو دکن که خداوند بر کوه خدا پوه رو پاره پاره کرد و موسا بی اون پردار این دنباله اون آیت خیلی حضر میخوام دنباله اون آیت که میگه به از خال موسا رب به هر نیان زرعلک از خودتون من تو رو ببینم لن سران لن نفی عبدی. گفت هرگز منو رو نخواهی ولیکن اون زرعل جبد ولی به پوه نگاه کن خلام معتجل ربوه لجبلج علیه دکن و خر موسا سیغه. سنت اجرش نمیارم اونا چی؟ این از که من ترجمه کردم. بعد. و گالا نبی صلّ الله عليه و سلم، ان الله خلقة آدم، فتجل او فيه و اذا تجلی الله. ذات جلللا اذا تجلل الله تجل لشيئا خذع له یعنی خداوند وقتی حدیثه ادم رو خلق کرد و او تجلی کرد و گفت است که خداوند به چیزی تجلی می‌کنه اون چیز در برابر او خاضع میشه این نکته رو باید بچنینید بعد تجلی عبارت از ظهور ذات و صفات الوهیت است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 زوغ تجلی حق نماید و بسی روندگان که در این مقام مغرور شدند و پندارند که تجلی حق یافتند و اگر شیخی کامل صاحب تصرف نباشد از این ورطه خلاص دشوار تا بنیاد یه که دقیقه اینجایی که روح هم صفحه تجلی میکنه و بعضی از سواندگان به ایشون خیال می‌کنم که این تجلیه صفحات هست و در نتیجه برای خود اون مقام خیلی بالاتری تصفل می‌کنم به گمران شد و اینجا میگه که بسیار روندگان در این مقام، تجلی همون مقام، مقام تجلیه از همون مقاماتا هم باجه. در این مقام میگه بسیاری گمران شدن و ورده افتادن و اگر شیخ در ازرافی نباشه که به اونا فگه این تجلید و صفات خداوندی نیست اشتباه نکنید ممکن است که به گمراهی اینا و هرچند در کشف این حقایق مشایخ متقدم قدس الله و ارباه هم کمتر کوچیدند و تا توانستند از نظر اغیار پوشیدند. اما چون این ضعیف آن نظر که بسی مدعیان بیمعنی در میان این طایفه پدید آمدهاند و به غرور شیطان و مکر نفس مغرور گشته و به بحر پیچاند پوسیده و به هر پیچاند پوسیده که از افواه گرفتند پنداشتند به کمال مقصد و مقصود این راه رسیدند و زوغ مشارب مردم یافته خود را در مملکت جای و تصرف دانسته و به اباحت و زندقه در افتاده چنان میگوید پوشیده مرقند از این خامیچند ز زتامات الفلا میچند نارفته ره صدق و صفا گامیچند بدنام کننده نکونا میچند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 و اگر در ایشان درد طلب باقی باشد دست در دامن صاحب دولتی زنند که بر که دولت او به مقصد و مقصود رسند چنان که جل و علا و البیوت من عبوابها و اتو البیوته من, البیوت من عبوابها و اگر به این ضعیف در این معنی گوید به جیفه برالایی که چون شاهین در خور آیی، چون سعبه اگر غذای بازی گردی بازی گردی که دست شهر شایی و نیز طالبان محق و مریدان صادق را دلیلی باشد به جاده سواب و مشبقی بود به مرجع و معا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 به به کمال رسد مشروقه آفتاب جمال حضرت حق گردد جام جهنمای نمای ذات متعالی صفات شود ولی که که را دولت تقالت و صفاده داد سعادت تجلی مساعدت نماید نمای که فضل الله من یشاء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 رحمت الله روایت میکرد نهر که به دوید گور گرفت اما گوران گرفت که به دوید گوران گرفت که به دوید که بده؟ نهر که به دوید گور گرفت این... اون مخصوص اه... هر گردی گردون نیست اما هر گردونی گردد نهر که به دوید گور گرفت اما گوران گرفت که دوید دوید یعنی های کسی النهدرonya هفتا guرف tobacco پسی به دوید ممکنه بگیره ممکن نیست. مرغود به عنایت لازم و مرقوم شرط لازم هست ولی کافی نیست بله گوره که گوره نه گوره همون کسی نمیتونه بگیره اما هر هر کسی دوئی گوره ها ولی بالاخره گوره بگیره چون رو بگیره لازم شرط کافی واقعا از روش که هر عزیز من صبح توفیق الهی این شکار شکار میگه هر که بدوی شکار را نمیرسه که همون کسی که میخواد شکار درست برسه باید بدوی الان چند هم اینطوره ست شکار چی شکار اکتر هم میگن یکی رو میزنن باقیشون نمیزنن دیده از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 و دریای روحانیت در تموج آید و فوج موجی به ساحل دل تاختن آرد بر سفای آینه دل تجلی پدید آید و گاه بود که با نور ذکر زا... زاکر نور ذکر مذکور آمیخته شود زوغ تجلی مذکور بخشد و نان بود بگاه گاه بود که روح به جملگی صفات در تجلی آید و این از محبه کلی آثار صفات بشری بود بگاه بود که ذات روح که خلیفه حق است در تجلی آید و به خلافت دعوی حق و به خلافت حق دعوی انلحق کردن گیرد و گاه بود که جمله موجودات را پیش تخت خلافت روح در سجود یابد در غلط افتاد که مگر حضرت حق است قیاس بر این حدیث که ازا تجلی الله لشیء انخذ علاق از این جنس غلط ها بسیار افتد به نفس از بحر شرب خیش آن غرور بخورد و هر رونده فرق و تمییز نتواند کرد میان حق و باطل جز منظوران نظر عنایت که محفوظاً از کید نفس و مکر حق اما فرق میان تجلی روحانی و تجلی ربانی اول آن است که تجلی روحانی بسمت حدوث دارد آن یعنی, یعنی میشه. قدیم آن را قوت افنا نباشد افنا نباشد اگرچه در وقت ظهور از آلت سفات بشری کند اما افنا نتواند کرد چون تجلی در حجاب شد سفات بشری معابدت کند آد المیشوم و علت طب... طبعه. طبعه ناگاه بود که نفس را از تجلی روحانیت آلتی بیگر حاصل شود از علم و معرفت در مکر و هیلت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 این توضیح مختصر دیدن اونجا مگیدن اگر تجلی روحانی باشه استفاده و رو محطه میکنه بعدم موقفت بعد که برگره استفاده وشری هم برگرسته کن ولی تجلی رفت رب... و گاهی ممکنه نفت از این تجلی روحانی سو استفاده بکنه و وسیدهی برای عرض که همان ارز که نفت دائما مشغول شیطنته این از که ممکنه در حالی که تجلی ربوانی وقتی صورت میگیره که صفات بشری محوه کلی شده بشه قول تدکتو که این تدکتو که طور نفس همون صحبت کوه طور تو است و جعله او دک کند بلا ما تجل لارب قول او دک کند این رو پار پاره داغون کرده است و خرموسا سعیان به طور نفس به کلی مندک بشه، داغون بشه اصلا و صفات بشری بره تا حق بیار جا الحق و زر شرم این آیم کن جا الحق و زرق الباطل این الباطل کان زنیبان این میگه فرقه و اون دوام داره تجلی روحانی دوام داره تجلی روحانی دوام نداره دیگر آن با حصول تجلی روحانی تو تومعنین دل پدید نیاید و از شوایب شک و ریبت خلاص نیابد و ذوق معرفت تمام ندهد و تجلی حق به خلاف و ضد این باشد دیگر آنک از تجلی روحانی غرور پندار پدید آید و عجب و هستی بیفزاید درد طلب نقصان پذیرد و خوف نیاز کم شود و از تجلی حق این جمله برخیزد و هستی به نیستی مبدل شود و درد تلبی افضاید و تشنگی زیادت شود چنان عزیزی میگوید سوز دل خسته از وطالش ننشد و تشنگی از آب زلالش ننشد نیرنگ وجود و نقش هستی برخواست و سر حوث عشق جمالش ننشد و اما تجلی حضرت خداوندی بر دو نوعه. تجلی زاد تجلی سپاس بلی اصلا بس که اون بالا این انواع تجلی رو میگه باز تجلی زاد تجلی سپاس رو باز انواعش رو میگه تا آخر پس و خود دوستان لط بکنند بخونند این که خیلی هم رایرانه و زیبا نوشته این اصل و البته یه کمی ثواد فارسی احتیاج داره حضر میخوام خیلی ولی خیلی خیلی قشنگ و زیبا نوشته این رو تا تجلی صفات جلال تجلی صفات جلال تجلی صفات, صفات جمال سایر مطالب و بعد توجیه میکنه اونجا حرف چیز رو حرف حلاج رو که گفت لعی صفی جب بطیسه والله که میگه این در مورد فنای مطلق خودش بود که حق چیزی رو نمیدید دید گفت چیزی نیست و اون که اگر صفت صفات به اصلاح چیز به صفت واحدی تجلی بکنه چه؟ و بعد میگه اگر به صفت قائم به نفسی صفات خداوند صفت قائم به نفسی بودنش متجلی شد آن افضا کنه که ابو یزید میگفت صبحانی ما اعظم شهنی که این از بایزید و هستامی نقصردن میگه این که میگه که این است که صفت قائم به نفسی حق تجلی کنه در وجودش مسائل مسائل انواع و هستام اینا رو میگه و فصل ادامه داره همینطور که من فعلا اینجا دیگه نمیتونم چیز بکنم فصل پنجشیس طفیه دیگه داره و شایسته این هست که کم بارادم بخونه خود من دو سه بار خوندمش و بازم بیشتر بارد خوند حال این, این چیز این تجلی که اینجا در شعر حفظ آمده مسئله است که سوال روش کار شد و عرض داده شده و مطلب داره و چیز داره این به همین سادگی نیست نه تجلیه ربانی و روحانی هم با مسئله خلول و سبول رابطه نه اینا میگن که ما ما حلول نیستیم حلول و اینا رو اتحاد حلول و اینا رو خیلی طرد میکنن و چیز نمی‌فهمم. ما میگه بنده همیشه بنده است فقط مثل خطریه که به دریا وصل و یعنی نیست بشه. هیچی از او نمونه. بنابراین نه اونا کاری نداره یعنی البته این مطالب مطالب ریاضی که نیستش که در بالاخره درویش یه حالاتی رو حس کرده، ریاضت کشته و چیزایی دیده، همون یعنی که دیده که اکثر هم میگن خودکن میگه نگفتن اینا رو برای اینکه اکثر میگن که تصوف علم حال، علم قالین یعنی نمیشین اینا رو ولی چیزایی از ذهنشون صادر میشه که اینا رو میگن بنده هم چون محوال رو ندیدم و مقامات رو تقینا کردم حق ندارم در اینجا حصار عقیده بکنم که درسته یا نه ولی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 بسیار چیزها هست که آدم نمیدونه یعنی همه چیز را آدم نمیدونه جز مختصر چیز محدود خیلی خیلی اندکی که در این عمر کوتا اگر کوتایی نکنه میشه یک چادکن میاد باقی مطالب همه میمونه یک دریا آدم اصلا نمیدونه مرموم استاد ما منفرمود آقا چه خبر هست در یک هندوستان چهارسد زبون مردم حرف می‌تونه حالا من اومدم فارسی رو در همه کتاباشم که نخوندم عشر عشان عشیلش هم نخوندم این, این همه دعوا و این همه عرض کنم که مثل تابوس چتر زدن و به خود بالیدن و استاد استاد نداره که آقا بگن کسی نشد دادم چیزی نشده چیزی نمی‌تونه بشه اصلا آدم چیچی هست نمود بیبوده اصلا چهریان میگه بگیتی غیر از نمودی نبودیم برفتیم که از ما نمانت نمودی نه داست آدمیزاد اینه و بنابراین باید یه قاعده حساب کارش دردش باشد خب بگه برم نرد بنده راجب ازول و راجب عباد حرف دادم و این مسئله خود تجلی و خود عزل و ابد باعث شد که ما یک بیت از غزل بیشتر چیز نسیم. دیگه بثار اون حرفا متاسمان نمتونیم برگردیم برای که دوباره عثار باید هم دو ساعت و سفر نمیشه بنابراین دنبال بحث می میگیریم و اجمالا فقط میگیم که عزل یعنی بی آغاز عبد یعنی بی انجام و خداوند تنها موجودیست یعنی اصلا تنها موجوده هیش موجود دیگری موجود نیست اصلا هر روز همه ما معدوم بودیم پس فردا هم اون معدومیم بنابراین یه نمودی به این دو ادم هستیم تنها وجودی که هست ذات هست که زمان هم خف شده و همین دلیل میگی در ازل یعنی وقت هنوز زمان نبود تو خواستی که تجلی بکنی راجع به تجلیم اون حدیث رو خوندم کنتو کنزن مخفی یعنی تا اورت توان اعرف تخلق تلخف به که این رو اینجا حالا عرض میکنم که یه عدیه از احادیث هست اینا با علم شریعت اگه به دقت خواهید بسنجید بسیاری از اینا حدیث های خیلی قرص و قایمی هم نیست و علم های حدیث و اینا درش اشکال کردن گفتن نه خیلی نفسسته این مثلا فلان راویش نمیدونم سنی از این حرفا زدن ولی صوفیه به این اصلا کار ندارن. اون حادیثی که مقرد استنادشونه میگیرن و به کارم میبرن و کاری به سلسله سندش که این خیلی قرص و قایم باشه اصلا نداره <تصفيق> <تصفيق> سلام سلام سلام یکی از اون حادیث که قالباً بهش استناد میشه همین همین حدیث کنتو کنزن مخیمگنه یعنی که میگوید که خدا قصدش از آفرینش عالم اصلا تجلی زاد خودش بود و این،, این تجلی هم فقط در یعنی انسان بود که میتونست این تجلی رو در درک بکنه. و قصه تجلیان در قرآن و در آیه قرآنی که قبلاً صوباتش شده گفتیم که کوفه گفت از خاله موسارت به عریانی نظر قال خاله لنترانی و لاهن نظر الی الجبل. حالا ما تجل راب جعل له دکن و خر موسار تیق. این هم آیه مربوط به تجلیه که هست اینا همه اگر اون فهرست در حادیث مرساد و لباد که ونده آورده بوده کنید و بین دوستان تفصیم کنید شاید نوت درسته در که مورد استناد سوپیگی هست اغلب و هم اگه فهرست آیات چند باشه که چه بدر و آیه هایی که مورد استناد جماعت سوپیست که اینا معین و مشخصه و محدود و معدود است هست به دست میاد شاید بعد مختصری ازش نبوده ولی تقریبا همش همون هست. بعد میگه که این دنباله مثل تجلیه که تنها تجلیگاه وجود حق دل آدمی فقط و این توضیح یعنی باقی مثل همش توضیح است که بعد از اون تجلیه میگه چطور، چطور فقط دل آدمی است میگه جلوه ای کرد رو خط دید ملک عشق نداشت این آتش شد از این غیرت رو بر آدم ملک داریم ملک داریم ملک داریم و ملک داریم, و ملک, داریم, و ملک, داریم. ملک یعنی دارایی شخصی خونه و دکه و باغ و این میشه ملک معمولاً هم به غیر منگول میگن البته اگر برای انوال منگولاً بگن ملک منه غلط نیست اما اصطلاح برای غیر منگول معمولاً ملک به معنی قلم رو حکومت یا پادشاهی یا هر چیزی دیگه یعنی این شما در این حال که مالک این اتاق هستید هر جور میتونید خراب کنید میتون درست کنید میتون بفروشید میتون گره بزنید ولی حکومت هم یه حق این تو داره اون حق این است که اگر این عملیات که میکنید خلاف مقررات حکومت باشه میت که اگه بخواید اینجا کارهای غیر قانونی بکنید و قتاق بفروشین و هر کنم که جماعت عشقی بیان اینجا ایرو این این حکومت میازه جب و فرش دارش این برد این، اینجا ملک آقای جعفری ملک دولت امریکا یعنی قوانین و قوانی دولت امریکا اینجا روان و هیچ به استناد اینکه چهار دیواری و اختیاری و خونه خودم هر کاری میخوام اینها نمیشه درست پس این شد ملک و شد ملک ملک یعنی پادشاه خونه هر کسی ملک خودشه ملک پادشاه ملک هم به منی فرشته است ملکم هم به من ببخشید ملکم یعنی پادشاه ملک هم منی فرشته پس اینجا جلوه ای کرد رو خواهد ملک عشق ندارد بر مورد فرشتگان گفتند که فرشتگان دارای احوال ثابتن این خداوند اونا را خلق کرده برای یه کار معینی خشم و شهوت هم ندارن وجود روحانی و بنابراین همون کاره میکنن در قرآن مثل این که از منهم رجعون لایست شدون و منهم سجدون لایار که اون بعضیشون همیشه در همباره و همواره هم وزیار همواره در سجود هن اونی که در سجود کار سجود کردن رکوع نمیکنه اونکه کارش رکوع کردنه سجود نمیکنه. حالش حال حالی که آدمی حالش ثابت نیست. حالش گردان با. برای اینکه درست اینه درک کنیم یه قطعه یه چهار بیتی دارید شیخ عجال سعدی من اونو می خونم برای میگه از یعقوب پرسیدی یکی پرسید از آن گشته فرزند که ای روشن روان پیر خردن زمه سرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاکن آنش ندیدی در خونت تو رو اندو... بچه اندران چا هموندیش تو ندیدیش ولی بوی پیراهن شاید مصر شنید اشکال میکنه بهش چرا میشه به بگفت احوال ما برق جهان احوال جمعه حال معنی همون اصطلاح صوفیه که قبلا گفتیم که حال هست و مقام هست و حال تغییر میکنه کنه مقام ثابته به گفت احوال ما برق جهان جهان اینجا یعنی جهنده طبعا. برق جهنده به گفت احوال ما برق جهان دمی پیدا و دیگر نهان گهی بر پارا ما اعلان شینیم گهی تا پیش پای خود نده واسه پیغمبرم مولانا گفته است که آن عالم آلم گفتش آمدی کلمینی یا اومیرا میزدی کسی که تمام دنیا رابط خدا جبریل بهش وحی می آورده که می کرد چه می کرد آیشه یه خود خودش لوس می کرد واسه از وقت از جات نازشو می و ارتماس می که با من حرف کسند اومیرا لقب آیشه این است که یکی از این احوال هم اشقه پرشته اشق نداره و این مطلب رو بارها حافظ ازش حرف بده یکیش که از همه قشنگ کره این از که پرشته اشق نداند که چیز قصه مخوانه یه این همینه به خواهجام و شرابی یا گلابی نصفه هم داره به خواهد که آدم رید یعنی از آدم بله پایل دید ملک هست یا اینجا حق رو خط بب بب ملک عشق نداشت ملک عشق نداره جمادات و حیوانات و اینا هم در ملاحل خیلی پایین هستن اینه که تنها جایی که هست بشر بشرم دلش فقط تجلیگاه گاهزات هست و از این رو بسیار دربارش بحث کردند گفتن که این هم باز حدیث هست که قلب المؤمنه بین افعین و نصاب الرحمان دل مؤمن بین دو تا انگوش از انگوشتای خدا یعنی در تصرف مطلق حرفه یا مثلا اتقوط راست از المؤمن فانه او یعن به نور الله از تیزخوشی مؤمن پرهیز کنید او به نور خدا می بینه. معنیش است که آدمی زاد اون چیزی تو را از دوگیتی فردوسی میگه تو را از دو براغ ورده به چندین میانجی بپرورده هم برانه که عقیق دارن که هشتف مخلوقات را هرچی خفش شده برای اوست دیگه نخستین فترت تفزین شمار توی تیشتن را به بازی مدار یعنی اگر یادتون باشه علت قائی آفرینش، و من راجبه های چهارگانه بحث کردم گفتم فکر اجمال میگم برای اینکه یه چیزی به وجود بیاد چهار تا علت میگن باید جمع شه اولیش علت قاهیه یعنی من فکر کنم که روز زمین کمرم درد میگیره بگم خب یه صندلی درست کنم بعد علت مادیه و چوب بعد علت صوریه یعنی نقشش واسه بعد علت فاعلی یعنی نجارش هم باید پیدا کنم سندلی که ساخته شد، اون علت قاهایی که اول همه فکر کردم آخر سرد عمل می‌آد یعنی اول من فکر می‌گرم، یه چیز می‌خوام توش گروش می‌گیم اون سه تا علت دیگر میرم فراهم میکنم این چهاتی که تازه اون فکر من عملی میشه. اینه که نخستین فطرت یعنی خلقه یکی از لغبای خدا پاکره یعنی خالص با ترست و ما یعنی خالص نخستین فترت پسین شمار توی یعنی خداوند اول میخواست تو رو خلق کنه ولی آخر همه خلق کرد در مورد پیغمبر اکم هم میگن فر این که رسول اکم آخر همه پیغمبران آمدن همین بود که همیشه علت قایی آخر میاد و این حدیثی هست یا مثلی هست برحال جمعه هی هست فکر نمی کنم حدیث باشه اسطلاح و مثله میگن اول الفکر آخر العمل اول الفکر آخر العمل همینه که عرض هزن که اول دادن فکر میکنه یه میز میخواد کتاب شده این رو آخر سر این آسل میشه بعد این که رفت کارار کرد این تاجه این نقشینه فکراست همین همینطوره و اینکه آدم رو میگه که خداوند میخواست اول میگه خدا خواست که آدمو خلق کنه بعد تمام زمین و آسمون اینا رو اول خلق کرد آخرانه در افسانه آفرینش هم همینه که خداوند زمین رو خلق کرد و آسمان ها رو خلق کرد و چه کرد و چه کرد و بعد گیاهان و آخرین کوه‌ها رو آفرید و دریاها رو آفرید و درختان آخرید آفرید و حیوانات آفرید آخرین مخلوقی که خلق کرد بشر باز هم الفبات نخستین فکرات پاتیم شد در وجود این بشر هم میگن دلش جایگاه تجلی خوایوند البته حالا ما میدونیم که دل یه پمپ یعنی دستگاه پمپ کردن خون بیشتر نیست اما علت این که این همه بهش اهمیت دادن صوفیه گذشته برای نص در موارد عاطفی آدم وقتی مهر داره وقتی کینه داره وقتی میترسه وقتی خشم میگیره این حالت های مختلف عواطف مغز عمل میکنه ولی آدم عمل رو که درک نمیکنه که تنها چیز دیگه نمیدید دلش شروع کرده تفیل بنابراین فکر میکنن که, که مرکز عواطف عواطف نیست که ما به صورت غیر علمی بشمیدیم احساسات احساسات اسم علمیش اسم علمی رماشون عواطف یعنی همین است قبیل مهر و چین و عشق و من فرس و خشم و اینا اینا رو به عنوان عواطف فکر مرکز عواطف و از جمله عشق دل و این همه حرف زدند دیگه اونو شاهد مسکه نمیخواد که بگم که چقدر بعد گفتن که در دل یه نقطه یاهی است کوتولو که بهش میگن سوویدا سوویدا باستین محفظ سوداست یعنی سیاه کتوی حبت بطل قلب هم بهش میگن. حبه قلب و معتقدم که اون که اصرار خلقت هست و اون که اصرار الهی هست و اون جایی که تجلیگاه حقه و اون جایی که در اختیار حقه این سوویده هست و به همین دلیل معتقدن که تمام اسرار وجود در سوویده دل آدمه اون عباد شیخ عجل سعدی روشون شیرای سعدی خیلی روخندتره من میگم برید مطالعه فرمایید و احیانا به یاد داشتون هم ازافه فرمایید همه شنیدید به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اون آشغم بر همه عالم، همه عالم از او. توی این غزل میگه که نه فلک را مسلم نه ملک را حاصل آن چه در سر سویدای بنی آدم از او. این سر سویدا و این سویدا داستانش کن و عشقم جایگاهش کن میگه روح حق جلوه کرد سر همون ازل اینکه که ملکش نداره یعنی درکم همین است که باز این اشاره ای به همون آیه هست که میگه خداوند فرمود انی اعلم و مالات تعلم گفتن که من میخوام خلیفه ی جانشینی از خودم روی زمین بگذارم گفتن کسی رو انتصت اونجا که فساد بکنه و خون بریزه اینا ترجمه فارسی خود آیه هست. به حال آنکه که ما داریم تو رو تصدیح می کنیم تو رو تقلیص می عبادت می تو رو خداوند ترموت که نه من چیزی می‌دونم که شما نمی‌دونید. تا بعد آدم با خلق کرد نسی می گه حق ذات حق در ازل تجلی که کرد ملک عشق نداره بندگی می‌کنه کنه خلقش کنه درست می تو اتومفی ستات روشن میشه. میذاری تو دنده آره که اوتوماتیک اله هم در را ترمز میکنی وامی بنزینش هم تموم شد گیرانه این بحشر اینجور نیست عمل دو دوتا آدم درباره یک یه کار واحد دو جور مختلف. یه بچه رو میزنی یا تندی میکنی بهش تنبیهش میکنی عدد میشه ارچه نوم میشه آدم میشه یه بچه دیگر هم این همون کار میکنی شروع میکنی به لجمود بدتر میشه ار عرش... به حال با یک کلمه مهربانی ممکنه خیلی راحت به راهش بیاری مثل بره دنبال خود این عکس العمل آدمیزات متفاوت است در حال که ملک اینطور نیست بود برای قصد خواست عرض کردم از اینکه غیرت اون از که بهش میگن رشک و رشد غیرت از حسدی حسد اون از که شخصی کسی که به این بدبختی است، این از این که مردم چیزی داشته باشن رنج میذاری هر جور امتیازی هر کسی داشته باشه این نراحق چیز احساری هم نداری که به خودش بدن آ. بیشتر مطلب اینه که چرا فلانی اینو داری چرا اون بابا ثبات داره چرا اون یکی خونهش خوشگله چرا اون یکی گرنگ اینا این حسد میگه توانم سعدی میگه توانم آن که نیازارم اندرون کسی حسود را چه کنم کوز خود برنج دارم بمیر تا برهی ای حسود این رنجیست که از عقوبت آن جز به مرگ نتونده این حسد یکی غیبته این است که بابا میگه که این آقای فرهیزار رفت و درد خوند و آدم شد و مهندس شد و منکس کرد و من چی از اون کم تره خب منم باید برم بکنم اون کارو این رو پسندیزه داشتن که آدم رو و که کارها و کوششها و نکات مثبت اشخاص و هر چه هست ببینه و خودشو کمتر از اونها نگیره و نه اینکه چیز طالب زبال نعمتی کسی باشه ولی میخواد خودش هم به پای اونها برستونه. این چیز نیست محفظن بسه بامی رشکه برای اینکه درست در حقیقت خهمی رشک اون احساسی ها نسبت زنش داره بناه آدم وقتی کسی بیاد دنبالش بیافته و با حرف بزن و چیک بکنه و مزایم بشه باید ناراحت بشه به شدت یا اگه خود زن آدم زیرستش یافت بلند باشه که هم دو دایی زن بلند نیه ولی اگه باشه ناره او رو بهش میگن رشت یعنی غیرت سعدی میگه که میگه دوست دارم این غیرت دوست دارم که کسی دوست ندارد جز من دوست دارم که کسید دوست در جزمن من حیف باشد که تو در خاطر اقیار آیی از بسیار زیباییست جایی آدم خوش خالی اینو بخونه قیمت گل برود چون تو به گلزار را. واو یعنی آب واو به شیرین یعنی آبه روی شیرینم میره واو به شیرین چون تو در خنده و رفتار آرائی با همه جلوه تابوس و خرامیدن او جلوه دیگر نکند چون تو برفتارایی دل چنین، روخ چنین خوب نباشد تو مگر خورشیدی، دل چنین سخت نباشد تو مگر خارایی دوست دارم که کسید دوست ندابد جز من هی باشد که تو در خاطر عقیارا این ببشنگم خیلی و باز حدیثی داریم در بین چیزای صوفیه اگر مجموعه کاملتری از این احادیث تایی مرساد و لگات میخواید کتاب که استاد من مرحومه و زمان فوزانفر مرحوم فرموده و بنده هم این سعادت رو داشتم که نمونه های چافی اون کتاب رو بلحگیری کردم کتابی نام احادیث من اصنب تمام این احادیث اونجا داده استاد و مراجعش هم داده. این کتاب رو تو همه کتاب کنهای دانشگاه هایی که بخش فارسی دارن میتونید به راحتی پیدا. کنید احیانا چاپ هم شده باشه تیرون میتونید هر حال اون کتاب خیلی خوبی برای این کار این احادیسی که مورد استناد صفیت و اونجا از قول پیغمبر اکرام یه چیزی محقو می که سعد یکی از اطفاق پیغمبر محروف بوده به سعد غیور این همان بار که فاق قیور است اما من قیورتر از او هستم و خداوند از من قیور است این غیراست و همین است که میگه که وقتی تجلی کرد جلوه کرد روح احد وقتی که اضطرش و ندونستن از این غیرت، از این رشت اون آتش عشق رو زد به دل آدم حالا قبل از اینکه که دنجور بشم باید عرض میکنم که تا روزگار حافظ تا روزی که حافظ مرده به تو رهد بعدش من نمی دونم تا که ولی تا اون روز آدم اسم خاص بوده و اسم عبول بشر بود آدم رو به جای انسان هیچ را خوی بنابراین تو دیوان حافظ هر چه آدم هست به معنی حضرت آدم حبول و باقی مردم رو یا میگفتن آدمی با یای نسبت یعنی منسوب به حضرت آدم یا آدمی زاده آدمی زاده اگر در ترباقیت نه اجاب سرد و باق برقس آمده و بید و چناک شعر آدمی و آدمی زاده به معنی باهای و آدم اسم اول بشر اسم خواست فقط و هم الان در پاکستان در زبون اردو اشخاص میگن آدمی آدمی یعنی آدمی یک آدمی اومده اینجا باش مکارده یعنی یه بشایی، یه انسان باز اینجا که میگوید که بر آدم زد اون غیرتو یعنی بر خود حضرت آدم بس قطعا این اشاره به همون آیه و از قال رب کل الملائکت اینی جایلون فل الارز خلیفه قال او اتج ها من یفتد و فیها و یک فکد زما و نهنو نصف به, و به هم بکه و نخط سلک قال اینی علم و ما لا تعلم بعدم میگه که آدم رو خوف کرد بعدم و علم الاسماه کله ها تمام نام ها رو به آدم ها به همین دلیل گروهی معتقده به سرچشمه الهی زبان هستند میگن زبان دا استناد این آیه میگن که زبان جز آموخته های عزو تحقیل ذهنی که زبان رو ساخته که خدا داده اون که اصلا هرکی درش نیست برای خود, خود خود زبان رو هم میگن که خدافن میگه و علم آدم الاسماها ها سام معرض هم علال ملائکه و خالهم به اونی به هاولا این سایی عرب میدوشت از این عرب می کنن هیچ چی نمی فهمید هیچ چی ن یعنی که لحجایی کاملا تیرونی است و اون اصلا درک میکنی اونم به خونه من نمیزم بله آدم الاسماه ها کله هاستم معرض ها ملال ملایکه تقاله هم به اونی به اون چیزها رو اسما با آدم یاد داد بعد اون مسمار رو چیزها رو به ملایکه نشون داد گفت اسم اینا رو بگین. خالو سبحانه که لا الملانا الا به معلم تنابه گفتن که توی ما دانشی نداریم جز اون که تو به ما یا آدم و انبعه هم بست ماهه کتاب که آدم اسم اینا رو به این ملائکه بگید بعد آدم گفت و بعد حضرت حق پرمود که سجده کنید آدم رو و همه سجده کردن به امر خدا فقط ابلیس الا ابلیس عبا و سکبر. خباه کرد استکبار کرد خودش رو بزرگ دانست و باقی به هر حال این این آتش رو از این غیرت رو بر آدم زد همین داستان این آیت که به بیان شاعرانه خیلی زیبا اینجا ترشید اصل میخواست که از آن چوله از اون آتش عشق چراغ صوفیه قالباً عقل رو تختهه میکنن نه عقله در حقیقت اتفاقاً من تو بهتی فنایی درسیدم و این مهم مطلب مطرح بود و اونجا یکی از شاگزا گفتش که میگن که این اقوام شرق که اینقدر عقب پوندن اینا یکی از دلائجش همین خردگوریزی صوفیه که تخته میکنن کنن عقل من گفتم نه اینطور نیست اونها یه نوع عقل تخته میکنن یه نوع دیگه روشو خیر قراره که بسیار حدیث ها هست که اول و اخر الله ال ا جوابتون گفتم یه حدیث دیگه هست که خداوند اولین چیزی که آفرید عقل بود بعد بهش گفت یا رو به من آمد گفت فرجات برو راست هر چه فرمان داد خدا قبول کرد بعد گفت چقدر تو خوبی که میتونی اوامر منو اجرا کنی و عمل کنی و در سازمان هیئت قدیم و جهانشناسی قدیم محرک این میگن که حرکت افلاک و سایر موجودات البته که به امر ذات هست ولی ذات حق مستقیما به کوه و دره و شطور و درخ امرش سازر نمی‌کند. چون حتی حالا ماده نیست جس نیست لطیفتر و روحانیتر از اون که تصورش بکنید میگن امر حق صادر میشه به عقل عقل هم باز اینقدر روحانی و لطیفه که باز نمیتونه به جس هم صادر کنه بعد عقل این پیغام رو میرسونه به نفس اون وقت نفس هست که میرسونه به موجودات. و به این تحتیل نه تا فلک عالم و مرکز زمین قائل بودن می‌دونید نه تا فلک قائل بودن که فلک اول فلک قمره فلک دوم فلک زهره فلک سوم فلک عطارد ببخشید فلک اول فلک قمره فلک دوم فلک اتارده فلک سوم فلک زهره فلک چهارم فلک خورشید یعنی که خیال می‌کردن خورشید در این کفه فلک پنجم فلک مریخ، فلک ششم فلک مشتری، فلک هفتم فلک زوحل فلک هشتم فلک ثوابطه ستاره های ثوابط فلک نهام فلکی سنان فلک, فلک اطلاس که محرک تمام افلاک دیگه است و در اون ستاره ای نیست این نهت فلک و در مرکز اینام زمین است و کار انصر به اصطلاح خود اونها با و باد و خاک و اون چه از اینا تکیب میشه که معدنیات است و نباتات است و حیوانات است و انسان حالا این دلیلش این بوده که اینا میدیدن که اولا فکر کردن که این ستاره ها رو کی می چجوری میچرخن چجوری نه دور زمین می ما خورشید چهر از اینا هر میرست و از این می از در میاد این چجور... کی نگرش بشته هنوز قانون جاذبه عمومی و این حرفا اون این بازیام که کشف نشده بود. البته وقتی عالم خالقی داشته باشه همون کارم هم کار ذات حقه ولی نمیدونستن. این که ناچار گفتن که عالم به صورت نه فلک مثل های پیاز توی هم دیگه. اپلوک از این عناصر روی زمین نیستن. عنصر خاصی هستن که میگن جرم فلکی. عنصر فلکی. این دارش کوه و فساد راه نداره، خرق و التیام هم نداره. یعنی پاره نمیشه، دوباره جوش هم نمیخوره این عنصر اینا می‌خرخ. این این نه تا کره تو هم می‌خرخان. هفتاشون، این هفتا سیاره رو بدنه این فلک نشونده شدن مثل نگینی که روی انگشتری یا برای اینکه دقیق تر روی کره یه, یه،, یه نگین رو بندشونن و بعد کره رو بچن خونن اون نگین هم حرکت دایرهی ای داره اینجور فکر میکردن که هر فلک یکی از این سیاراته دلیلش اینه که سیارات حرکتشون با حرکت ستاهای دیگه تحطیق نمیکرد یکیشون که یه شبه تمام میشهد اون یکی نمیدن و ستارها جاهاشون با هم تو آسمون میبینیم که عوض میشه جای زهره مثلا جای مشتری یه شب خیلی نزدیک که به ماه پس شب دورتره پس, پس شب خیلی دورتره این آخر بنابراین وقتی که محرکم باید داشته بشن خب این محرک این فلک این فلک ها حرکاتشون تنتر یا کنتره در نبچه این ها تنتر یا فلک سوابته. که ستاره های ثابت همه با هم حرکت میکنن به خیال دوستان و فلک نهام فلکیست که محرک افلاک دیگه است اون وقت به ترتیب برای هر فلکی یک عقل هست و یک نفس هست و یک فلک فلک نهم با عقل اول و نفس به وسیله نفس اول با عقل اول در ارتباط یعنی اولین سادر حق فلك دوم با حرکت برعکس هشتم که فلک اساس باشه با عقل دوم و نفس دوم هم میاد پایین فلک نهم که فلك ماه باشه فلك اول که فلك ماه باشه با عقل نهم و نفس نهم که 9 درجهش نزول میکنه ضعیف تر میشه همه به هم مرتبطن همه زیر هم بالاخره در مرتبه دهم ده عقل و نفس تقسیم میشه به اغول جزئی و نفوس جزئی و اون اغول اوناییست که تو کله بنده و سرکار خداوند تبارک و تعالی به وجیه گذارد و نفوس هم نفس انسانی و نفس حیبانی الى آخری بنابراین اغول و نفوس جزئی یه آخرین مرحله و آخرین مرتبه و نازل در این مرتبه عقل و نفس ولی اصلا تصور عقل و نفس و فکر عقل و برای این بودی که بتونن رابطه ی حق رو با عالم برقرار کنن که جور عوامر از ذات حقی صادر میشده به چه تحتیبی میرسیده به افلاک اناسیه این علت عرض عرض کنم که اما عقل اولین صادره چنان که عرض کردم. سوپیه معتقدن اون عقلی که انسان رو به مرحله کمال میرسونه و به مرحله وسال میرسونه که همون حالت عشق او با شد ولی عقلی که دنبال کاری و کاری و کلاورداری و حساب و چیزی که آدم رو میکشه به طرف نفسانی. یاد. و روح آلودگی های مختلف اون عقلی که بازاری ها دارن و که کار میکنه برای پول ساختن به قول اینا پول ساختن هم ترمه خودمون گفتن پول کردن و خیلی هم بهتر بود و زیباتر از پول ساختن پول کردن میگفتن و اگر میخواستن مختصب ترشم بکنن میگفتن پیدا کردن میگفت پرانی پیدا کننده هست پیده کننده یعنی منیمه ای یا پول پیدا کنه اون حسابایی که برای پول پیدا کردن اینا هست اونو صوفیه تخته نستن، یا اینا بی‌عرضشی و استدلال و نصاف کتاب و خورده‌کاری اینا رو دوست ندارن پای استدلالیان توبین بود، پای توبین سختی بتمکین بود و میگن که فلاسفه به رهبری چنین عقلی میخواستن برسن تمام اسرار آلم وجود رو کشف بکنن در حالی که عقل به خصوص عقل جزیه یه دونه آدم که ده مرتبه نزول کرده و تازه تقسیم شده بین همه افراد و شهر که قابل این نیست که بتونه از کنه این آلم سرزر اون حقیقت خودش باید بر دل آدم تجلیل به همین دلیل میگه فلاسفه معتقد بودن که آدم باید بره فلسفه بخونه تا به اون عقل اول رو عقل فعال هم بهش میده عقل اول یا عقل فعال میگم قرض آدمی هدف از خلقت پیوستن و عقل فعال بقایت استعادت این است که آدم به اون عقل فعال برسه یعنی اون عقل کلی و عقل اول برسه عقل کُل همش میگه عقل اول رو هم بهش میگن عقل کل گاهی اعتراض میگن چرا کردی عقل کل شدی, شدی. شنیدین که عقل کل و هم عقل اوله عقل فعالم هم هم عقل اوله میگم فلاسطه که قیرت گراه هستن به اسطلاح میگم قایت سعادت آدم پیوستن به اون عقل اول یا اون عقل فعال و از امام فخر رازی که فیلسوب بود و عالم علم, علم کلام بود نقل میکنن که در هفتاد سالگی وقتی میخواست بمیره گفت دریق از این هفتاد سال عمری که در راه تیوستن به عقل فعال فرد یعنی که من راه درستی نرفتن و حال اینکه صوفیه هیچ وقت از حال و احوالشون نه تنها اظهار پشیمونی نکردن، شاید اشتباه میکنن، من که ندیدم بلی نه تنها اظهار پشیمونی نکردن بلکه معتقد بودن که وقت سعادت شخص وقتی که به وسال میرسه، یعنی وقتی نیم می میره چیه اون هجاب، هجاب گل، گل، اجاب چه جان میشود قوار تنم اجاب چهره جان میشود قوار تنم خوش آدمی که از این چهره پرده بر فکنم چنین قصس ند صزای چمن خوشالهام زمن می‌گذرن رزبان که مرغ آن چمنم دیس بار حافظ بعد بار این داره این جان آریت که با حافظ به دو روزی ببینم و تسلیم بیکنم با همین دلیل وقتی که صوفیه یکیشون میمرده با رقص و ساز و آواز اینو میبردن و به خاک می سپردن. و مولانا یکی از هاش شیخ صلافیدین فریدون زرکوب متاسفانه مولانا دوتا یکی مرشدش رو که رفت و بعد یه خلیفه انتخاب کرد جانشینی برای خودش شیخ صلافیدین فریدون زرکوب او هم پیش از مولانا مرد و بعد مولانا فرمود که جنازه شیخ سلا هایدین فریدون رو بردارن با سما و سرود و رقص ببرن برای دست، و خود مولانا دستور دارتی در تزدیک بازار در آبیش حلقه بستن و مولانا اونجو شروع کرد به همون سبک در میشه مولوی به چرکیدن برست برای اینکه این به دوست رسیده منزل حافظ کنون بار که دل برای دلدار رست جان برای جانانشون بارها بارها بارها نارو رو صوفیه اشاره کردن بنابراین اونا شایاتمان بودن اصلا بولانا غزلی داره غزل معروفی به روز مرگ تو تابوت من روان باشد مثلا گوان مکن که مرا میل این جهان باشد یه چند چیزی داره مفصل و هنوز هنوز در پاکستان برای هر کدوم این صوفیه یه روز معینی یا چند روز معین جشن صوفیه بود به معدید که در لاهوره در ایالت پنجاب و او روش میگن داتا گنج بخش داتا یعنی پدر صوفیه رو با لغت بابا هم صدا می کنه داتا گنج, گنج بخش هم که مقلعه داتا گنج بخش محصول اولاسن غزنبیه او معروفترین صوفی در سراسر پاکستان در ایالت سنت کسی هست به نام شاه ولی الله در دهلی در هندوستان صوفی هست به نام نظام الدین اولیا که ناصر خسرو دهلتی و حسن دهلتی شاعر بسیار معروف همه از موریدها و پیروهای همین نظام الدین اولیا بود. اینا هر کدومشون داتا گنج بخش که پنج روز هر سال جشن دارن این جشن بشن اورس ارس با این از عروسی میان مقصودشون اینه که این به بسال ده. بعد مردم بلند میشن از راه های دور فرسنگ ها پای پیاده و بسیارشون با پای برهنه میان خودشون رو میرسونن به مقبله این مقبله پیران صوفیه مثل امامزاده های ما اونجور مورد احترام میرسونن اونجا اونجا حالا هر چند تا هستن 5000 نفرن خوبه 10000 نفرن خوبه 100000 نفرن خوبه از اموال بغ شده داتا گنجباش بعد به همه اینا شام با غذا داده هر کی بعد هم اونجا میگیرن میخوابن یه صحنه داره مثلا بنزیر همین دارم صحنه از عبدلظی یا صحنه امروز یا امثال اینا کی آدم اصلا تکون نمیتونه بخوره تا برای شاه علی الله روزای چهر پنگ روز عرص چیز طول میشه مراسمی هم برای خسیسین و برای خواست در خود مقبره ادارات ها گنجوخش نام بر، بر، برگزار برای شاه علی الله هم هم روزای عرص هست که من عرص گنجوخش رو اتفاقا رفتم در لاهور و این مراسمو دیدم اینا همه هنوز باقیه و اینه میگیرن و اونجا اونجایی صحبت روز خوندن و گریه کردن و تو سرزن مطلقانی بر حقیقت همون که عرض کردن اظهار شادی میزنن برای اینکه این, که این به،, به سال رسیده و به حق خیلی در حالی که کسانی که اهل فلسفه بودن اینا خیلی اینا،, اینا بعد آخر سر فکر میکردن که ما به هیچ رو نرسید به اینه که خاجه می که عقل می خواست که از آن شعله چرا غفرو زد یعنی راهی رو که به پای عشق باید من یادمه که مرحوم اصلاد ما unke... وقت که راجب این مسئله میفرمودن فرمودن نمیدارم همین در بودیانه خیلی گذشت از این سال سال سی و پنج سی و پنج سالی گذشت شما چهار گذشت سی و مطلب سی شیم سالی که شما فکر راجب که مورچه ای خود راه شهری رو به شهر دیگه تیهی رو کن اینسان آن بهش نمیرسه هیچ بلا اینکه را بیفته امکان نداره حالا اگه استفاقا این خودش رو به بالو پر عشق ببنده یعنی در مثال تمثیل به, به صورت مادی دروردنش این مرچتی اتومبیلی باشه یا تو های هواپیمایی باشه در آن واحد میرسه و اینا همینطور میگن که اون کمالی که به راه عقل میخوایید برید حتما اولا نمیرسید دوم این که هزار گمراهی دارید و تازه چهار قدمشو میرید اگه به پای عشق بخواد برید دو قدم بیشتر میرید میگه خطوتان خطوه یعنی قدم خطوه با تا خطوتان وقت وصل دو قدم است و به وسال رسید دو قدم چیه؟ اول این که از سر جهان برخیزی دوبا میشه میشه از سر خودت برخیزی تموم بایی هم بعضی هم گفتن ست گفتن در کلاه فرق میباید سه ترک ترک دنیا ترک اقبا ترک ترک یعنی, یعنی ترک رو کنی و بری سراق طلب برای از کنم این کار رو صوفیه کار عقل نمیتون. و اون دوست عزیز بنده که باش مذاکره داشتم گفتم که آه برای کارهای این جهانی برای هایتک به حول دوستان و حق و از کار کنید اوتوموبیل و تیاره و این مسائل و این جریانات و معماری و سایر مسائل اینا هیچ آدم از خدا نمیتونه باز بداره. و اون اصلا صحبت دیگریست یعنی الان دیگه معنی نداره که کسی بلید توی باری بشینه لخت اوریون هم باشه یه برگ مثلا اینجاش بذاره بعدا بچهره علا دیگه من صوفی شدم این درست می صوفیه درست نه حالا هزار سال بیش ابو سعید میگه دیگه ابو سعید میگه مرد تمام آن است که صبحشون در بازار باشون معامله بکنه با مردم سرکله بزنه و همیشه دلو با هم یک رازی تو مثلا دولباد هم همین رو میگه میگه پادشاه ها یه جور تصوف داره وزیرش یه جور تصوف داره نظامیش یه جور تصوف داره بقال و چقال هم یه جور هر کونه یه جور راه دارن که باید پرن. این است که اصلا اون مطلب نیست که خرد رو وان ندارن به کارهایی که صلاحیت انجام اون کارها رو داره این اصلا صوفی هم هیچ بخی حرف نست. ولی معتقد بودن اون مسائلی که از راه خیرت بهش هرگز نمیرسیم و اینا تعیین شده است و تنها وسیله رسیدنش اشکه این رو اگر عقل بخواد درش دخالت بکنه دخالتش فقط مصیبت واه هیچ هیچ ارزشی چیزی ند. پیشون هم گفت گفتم که این خیرت من فکر نمیکنم باشه مطلب از این قراره ولی خب درل هزار تا دلیل هم داشته گفتم بهشم که یکی از دلائل عرض کنم که ترقی فوقلاده مادی غرب این بوده است که با خیرتگراهیی بوده که اول یه مقدار جامعه از زیر ساخته شد یه تحولاتی انرژی رو مهار کردن نمیتونم ماشین ساختن بعد برای اون کار دیگه باید یه فلسفه تازه دوست که اون تعلیمات عرست و دیگه اون جامعه رو نمیتونست بعد کسانی مثل دکارس و پیدا پیدستن و در شرق این تحول در چیزم پیدا نشد اینا خودش محیط و بسیاری مسائل دیگه این کارها رو کرده کردم اینا و اول عرض کردم یه سری در کارهای فنی و اینا به پیشرفتای نائل شدن در چه جامعه از اون حالت آمد از اون حال ایستایی آمد حال پویایی یعنی ستتیفیگه نبود دینامیک بود دینامیک به و وقتی که جامعه پویا شد اون وقت باید یه تفکری هم متناسب با اون جامعه درست میشد این است که خیرتگرایی و پرداختن به به صورت درست و که همون کاری بود که بیکن و دکارت کردن موجب این تغییرات شد کشون حالا من به اون مسائل اصلا کار ندارم غرض این است که یه وقت شما تو ذهنتون خدای نخواست اینطور نره این که اینکه که عقل رو تخته میکنن این برای اینی که میگن نه تو روزم مثلا نباید که کار زندگی تو امور روزانه زندگی که میخواد بچرخونی نباید به داوری عقل یه تمزاری چیزی هم همچیزی نمید عبدا. کار ماهاش و کار زندگی و کار نمیدون به اجتماعی و سایر مسائل و اینا رو مطلقا اخیارش دست عقله ولی اون جایی که میخواد آدم به حقیقت برسه و به سعادت برسه و به قول فلاسفه به عقل فعال به فیمنده عقل فعال این قدم رو نمیتونه برداره و من الان از شما چه پنهان؟ اینو به شما بگم برای اینکه من تماس دارم تا حدی و اندازه از ناچیز خودم میدونم کسانی که در مراتب علمی و مراحل علمی و درجات بالا رستن جایزه های بزرگی فرمان در مثلا فرض کنید یه آدمی که در رأس فیزیک دنیا است الان این یه تمایل تمایلات ارفانی از این نوع داره یعنی میگه که بالاخره باید چیزی اینجا تو مغز آدم فرق بزنه در دروس و من یادم 20 سال پیش حسطال فیزیکی دانشگاه تهران دکتر کشی افشار صورت جراجو و عالم اینا گفتش که آخرین نظریه‌ای که دادن همون روزا این است که در فضایی و یه اتاق معمولی در هر ثانیه یک اتم هیدروژن به وجود میاد. اما چجوری به وجود میاد کیفیتش فرما بر روشند برازم علاوهم این است که وقتی دانشها رو الان هم با همه این چیز وقتی با همون منطق علمی میرن جلو و میرسن به منطقه علیهش اون بزرگانی که در این فن هستن و سازه میشینن مترسته اینکه یه چیزی بهشون الهام بشه یه برقی تو مرزشون بزنه. این مطلب بیست که خاجم اینجا میگه عقل میخواد که از آن شعله از اون شعله تجلی حق یا آتش اشت چراق افروزد یعنی روشنگری بکنه برق غیرت که همون رشکیست که ارز کردن بدرخشید و جهان برهم دارد فراد این از اون جهانی که عقل میخواست تسازه با اون تحتیلی که او در نظر داشت این به درد ذات هر تجلی کرده بود نمیخورد این است که غیرت هر قالب شد و اون کارو به هم دارد خواهد که آید به تماشاگاه راز دست قیب آمد و بر سینه نامهرم زد اولا یک کتابی مرحوم متحری استاد متحری آیت الله متحری هرچی میگیم مرتضا متحری کتابی نوشته مینامه تماشاگه راز راجب حافظ اگر این کتاب گیر اردین اولاً بخونی برای اینکه او مرد فقیه و متشرعی بوده سعیم کرده که اونجا تا اونجای که ممکنه حافظ رو به اصطلاح بله، مراهات کننده تمام اصول و مطالب دین قلم داد بکنه و حافظ هم هست تو دیوانش همه چیز رو میشه پیدا بکنی برایش استدلال ولی خب عکسش هم هست کتاب خدا قرآن کریم هم همینطوره یه عده استدلال میکنن که خدا رو هرگز با این دوتا چشم نمیشه دید از قرآن آیه میارن یه عده معتزله اینطوره معتزله عقیقی دارن که خدا رو با این دوتا چشم به بینندگاه نافریننده را نبینین بر دو بیننده را این عقیده معتزله که در هیچ زمانی در آخرت در دنیا هیچ وقت هیچ جور خدا رو نمیشه دید و استناد میکنم به آیه قرآن لاتو کول الابسار و هو یدرکوه الابسار و حووه الناتیب القدی دیده ها چشم ها او درک نمیکنه ولی او چه ها رو درک میکنه و او لطیف و آگاه آشایران میگن خیلی روز میگن چطور میشه خالقی رو که آدم نبینه که نمیتونه بفرستش که و منتهام روز قیامت ما میتونه و بعد بعد از بعد از رسیدگی به حساب و کتابی که خدا رو میتونن ببینن و دواز از قرآن آیه میارن که وجوه یومئ زن ناظره الی ها ناظره روی های اون مؤمنین در روزگار تر و تازه و با ترابطه و به خدای خودشم نگام نظر می اون وقت اینا رو بعد و خودم که موافقه این بلند سعی کردن عقیده چیز رو جرح بکنن و بعدن سر لغتا پرداختن که این به اون معنی نیست اون چیز نیست که حالا به اون کارا کاری نده خواب یه چند وضعی داره و یه مسئله خیلی مهم هست که غالباً ازش کافل میشن، اون اینه که ما این کتاب الان داریم و تو دستمون هم هست میگیم این دیوان حافظ بسیار ولی خود شخص حافظ اینو چند وقت طول کشیده این کتاب رو نوشته تمام عمرش حافظ بیش از پنجه سال احتمال قبی این از که شاعری کرده به حاصل شاعریش این کتاب خب در این پنج شما خودتون به خصوص اونایی که یه کمی سن بیشتری ازشون گذشته میدونید که ده دفعه عقیدتون تغییر دادید یه روزی طرفدار یه چیزی بودید طرفدار چیز دیگه شدید پس طرفدار چیز دیگه شدید و حافظ با این ذهن جستجوگر که داره که می بینیم از این تحول ممکن بود برکنار باشه یعنی شعری که روز اول گفته همونی نیست که روز آخر گفته خب نه صریحا میگه که حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظر باز پس طور عجب لازم ایام شباب این دوره جوونی هر آسیاب نو یک کرکردی داره دیگه بالاخره حافظم جوان بوده جوان خالی هم نبوده خوشاواواز بوده اولا موسیقی درجه یک میدونسته عالم خیلی مهمی بوده لقب استاد و نهاری را علما و لغبای خیلی بالا بهشون دادن اینجا یه کردم بهتون بگم که ممکنه گاهی برای اسباب اشتباه شده باشه برای علما چه آخون چه فیلسو چه آره چه نمیدونم, چه آره، چه نمیدونم، شاعر کسانی که تو این مسائل معنوی کار میکنن وقت که می یه مقدار لقب پشترشون میاد. بقت همین حالا هم در های علمیه معموله که وقتی کسی مشتهد میشه اجازه اجتهاد بهش یعنی اون رئیس حوزه بزرگتر حوزه علمیه معمولاً یکی دو تا بیشتر نیستن اونا اجازه اجتهاد براش این مجتهد شده و چون شده تقلید بر او حرامه نباید مقلد هیچ اخونده دیگه‌ای بشه خودش باید حکامو و اون وقت آیا دیگران هم اجازه دارن از اون تقلید بکنن یا نه باره اینکه یکی به اینجا میرسه که فقط کار دل خود رو از آب دردید. یکی دیگه نه طوریست که دیگران هم میتونن ازش تقلید کنن اون وقت توی این اجازه ای که استاد برای شاگردش می یه صفاتی برای اون شاگرد ذکر می کنیم ما خیال میکنیم که این لغباریست که همج اگه کسی اهل بحث و پاپشاری روی بطلب یا چیزیه میگه اگه کسی خوش تند داره میگه اگه کسی کوشش زیاد میکنه میگه نمیدونم هر نوع صفاتی که در دوران تحصیل از این بچه دیده و آدما هم همجور که دریخت ظاهریشون فرق داره هر کدونه شما معلمی آدر کسی نکرده باشه شاگذی که حتما کرده بیست تا که توی کلاس هست، میرم بیرون هر بیست تاشون واقعا فرق کردن. کوچکترین بچه اشتراکی ندارن، حتی در میزان در چیزی که از اون در فهمیدن. حال فرض کن من خونده باشم، ولی چیزی که از فرهنگ فهمم. استاد تمام این صفات هر شاگرد اشاره. لقبایی که به علما میدن وقتی مینویسن که ما به نظر اون میاد چند تا جمله عربی در هم فلان از این لغبا مفهوم داره و حساب داره حتی مرحوم استاد همایی خیلی در این کار دقیق بوده و مثلا اغلب کسان نمیشن دوست فلان انواع اقسام صفت ها چیزهای مختلف داشتن که این هم, هم در دور تحصیل خودشون یاد گرفته بودن و برای هر کسی در خور و به تحصیب کار او لغب می‌دارن حافظ جز کسانی است که لغب‌هایی که برایش نوشتن جز در مقدمه دیبان حافظ مقدمه محمد گلندام که بهترین نسخه‌شم در حافظ چاپ نظیر احمد است. اگر اینجا دارین حافظ چاپ جلالی ناینی و نظیر احمد رو اونو بدین به من، اونه؟ نه شما بهترین نسخه این مقدمه همین مقدمه ایست که در نسخه چاپ نزیر احمد هست اینجا میگوید که ذات ملک صفات مثلا ملک صفات میگه یعنی این آدم است که از اول مادین به دوره ذات ملک صفات مولانای معظم مرحوم سعید شهید شهیدم برای علمای بزرگ وقتی از دنیا میدتن لقب شهید میدادند. برای اینکه حدیث از پیغمبر داریم که من ما تا فی طلب العلم ما تا شهید کسی که در طلب علم در جستجوی علم به نیره مثل اینه که به شهادت است، یعنی مقام شهادت مولانای عظم مرهوم سعید شهید, شهید. مفخر و فاضل العلماء یعنی مایه فخر فاضلترین علماء استاد و نهاریر العدباء استاد عدیبان نهریر یعنی عدیبان قویدت معدن و لطائف و روحانیه معدن لطائف روحانی مخزن معارف صبحانی چم سلمه محمد حافظ این ها رو جز به علمای بزرگ و جز به های بزرگ نمیده آدمی با این با این حساب ها. با اون آواز با اون اطلاع و بعد ظاهرا قیافه یعنی هیکل و قیافه هم خوب بوده البته ما الان متاسفانه هیچ قرینه‌ای به دست نداریم من خیلی دور یکیش قرینه‌ای منفیس هیچ وقت خافز از ریخت خود رو برد خودش شکایتی نداشته در که معروفه که میگن معروف که هست وحشی شاعر کچل بود میگه بعد که یه روزی نشسته برم کرده بودم سر کل را و زیر فوته‌پنها رو ندارم چه کردم چه کردم یک کسی گذشت و گفت چی کار میکنی؟ گفت مثلا دارم کار میکنم که مو در میاره گفت مگر نشدیده پنده بزرگان زمین شور سنبول بر نیارت در اون تقم عمل مگر بلیه نشد. اصلا حافظ اولا هیچی نار نداره دوم اینکه احتمال این هست که قدش بلند برای بلن که میگه به روز واقعه تابوت ماز سرب کنید که میرویم به داغ بلند بالایی آدم تا خودش بلندبالا نواشه که دنبال معشیق و بلندبالا نیست که راه هست برحال آدم خیلی شاخص و آدم خیلی جاستنگین و کسی که در جوانیش رفیق نزدیک پادشاه شیراد شاه شیخ ابو خب اصحاب بعد با شاخ شجاع اون همه روابط. این آدم معمولی که نیست بعد این آدم حاصل پنجه سال کارش اینجا هر روزی یا حالتی میشته یه روز زنش دعوا کرده بوده یه روز برهگ خااننم دست سر گوشش کشته بوده یه روز سیر عشقی خورده بوده یه روزی این شده بوده جاک های کشیده بوده. در سیر و سلوک گاهی پاش به سنگداخت خورده گاهی فتوح و گشایشی برش بوده اینا همه رو توی این شعر منعکس کرده. ما این چون ما در ضرفی یه ساعتی اوملی و همش اینجا بسته شده تو این کتاب بودذاشتم درمان فکریم که اینا همه رو حافظم نشسته همین نوشته او گشت کنار اینجور که نیست بنابراین هر کسی میتونه متعبومه خودش پیدا کنه اما مرحوم متعری از ذنه اینکه آخون باقی مرد عالمی هم بود یعنی چنین نیست که برد یک کسی بدبختی گفته بود که حافظ داره که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرد این معنی یعنی خطا ردد که ظاهرش دیر ما گفت خطا برقلم سون نرفت آفرین بر نظر فارس خطا پوشش. ششم مرهوم متحرید دفاع میکنه که این درست نیست و این جوره و دلایلش میاره اونجا که تو اون تماشاگه راز میتونید بخون ولی بیچاره ای در هند یه آدم صافزادهی اول هم فکر کرده که خوب خاج حافظ که کفر نمیگه مردی که به غیبه که کفر نمیگه خ ق سون نرفتم که این هم که کفته. بنابراین اینو باید یه جووریشرش ازثر عافظ چه جوری میگه که حافظ اه. یه دوست دیاشین دوستش اسمش سون الله بوده. و این سون الله مشرل خط میکرده خطش هم بد بوده. منت خ چون دوست حافظ بوده. حافظ باید به این رعایت میکرده این از که یه روز این سون الله خط نوشته بود آورده بود بعد همه گفتن که این خیلی خط مزخف و خط بدیه حافظ گفت نه خیلی خیلی خط خوبیه بعد گفت بین ما گفت خطا برقلن سون نرخ یعنی سون الله خطش گفت <تصحن> <تصحن> <تصحن> <تصحن> <تصحن> خب این دیگه خیلی آره هم باید ساده دل باشه این چاب شده ها را نکنید که من اینا را از خودم درنی. چاپ شده به مجله چاپ پاکستان، نام مجله دانش، یکی از شهرها و تصفیرای درزن برین ببینید که شهرها که حافظ نسان چجوریه؟ یکی از شهرهای رو معرفی کرده این تیکر منم نقد کردید. آلتو زین سه چهار تا شهرت جام معرفی کرده که تمیزین نیستن، همش اینطوری. متعری اینجوری نیست. یعنی کاملا کتابش قابل خوندن و حسابیه. ولی به هر حال اون دیدو داره دیگه مرد مشتهد متشرع فقیه که حاضر نیست قبول کنه که حافظ عرق خود ای کارش هم ای کار، همه ما مردم هم همیده که هر کسی میخواد حافظ و به صورت کامل اون چیزی که خودش قبول داره در کنه. اونی که ملحده میگه نه حافظ خدا پیغمبر کجا سرش میشه این اصلا نبوده چنین بود چه تفلان تاکه ایزاه تریبی به سیب بوستان و شهد و شیرم دیگه اصلا منکره بهش از پرش بیتی بیت بعدش هم نمیبینه چنان پرش رو پزاوی سینه از دوست که یاد خیش گم شد از زمیرم نمیدونم, نمیدونم اون یکی میگه که همه این برد چی میگوست حافظ اشاره به آب انگور تخمیر شده اینجور نیست خبی هم که میگه میگفته اصطلاح های عرفان اونم نمونه اون جاهایی که حتماً آب انگور تخمیر شده است میخونم برای براتون میگه ساقی باده از این دست به جام اندازد عرفان را همه در شرب مدام اندازد بر چنین چه چه کار ندارم بعد میگه روز در کسب هنر کوف که می خوردن روز دلتون ها نه در زنگ زلام داده. آن زمان وقت می صبح فروغ است که چرخ گرد خرگاه و پرده شام اندازه که خب. می جذبه الهی که روز شب نداره که دیرم سیاره میکنه ایش در بنابراین هتمه یا باده با محتسب شهر ننوشی زنهاد که خورد باده تو سنگ به جام اندازه. فارز می‌ذاریم برابریم اگر حافظ رو خود حافظ باشه با یه قدری پیرن خودمونو رو خرقهی خودمون رو تنش نکنیم عمامه خودمون سرش نذاریم اگه کلاه بیدینی داریم سر خاجی نذاریم کلاه آخوندی هم داریم سرش نذاریم کلاه ننم بو علی شایی هم داریم سرش نذاریم بذاریم خودمون که هست باشه این درسته ولی این کار آدم نمیتونه بکنه برای هر کسی طبعاً اون عقیده‌ای که میگه عقیده که طرفدارشه. اگه میگه نه من این عقیده‌دارم میگه اما طرفدارش میگه مثلا تو دیوونه‌ای. چه عقیده‌ای که آدم مخالفشه یا نه خیلی طرفدارش نیست، نمیگه که بنابراین هر رو میگه و وقتی هم طرفدارش بود میخواد کسیام که دوست داره اولا همون عقیده رو داشته باشه، دوم اینکه در حقیقت فکر میکنه که این آدم به این مهمی که از تنع عقیده در بحث داشته باشه من اعلیحضرت در آدم عاقل این عقیده قبول داره خب پادشاه که همی پس باید همین بس بعد همین باشه و میزاهاون که ارمانی تو از کتاباش میدونسه که تعجب اینه که آدمیزاد آدمیزاد درست جونگاری که مغزش کار میکنه ده دفعه از جمونی تا پیرش عقاید رو عوض میکنه هر دفعه میگه اینی که من میگم که حقیقت محزی. هر که هم مخالفت کنم کنیم میگه آقا تو بعد پس پرده میاد یه عقده دیگه میگیره بازمان هم همینه میگه ب... ابرت نمیگیره که تو تا پری روز یه چیز دیگه ای رو میگفتی که این حقیقت محصی خب اینم شاید یه روزی اونجوری بشه ولی نه نمیشه این از که تفسیرهایی در مورد حافظی مقداری گرفتاری بست حالا برحال کتاب آقای متحریه اسمش تماشاگه رازه و کتاب خوندنی هم هست خیلی مطالب جالب توش هست و اگه گیرتون اومد بخونی یک اما مدعی اسم فاعلی از مستر ادعا ادعا کردند رو معمولاً و به خصوص این مدعی و ادعا کننده رو معمولا در شعر بزرگان، شعر سعدی، شعر حفظ، شعر مولانا به معنی کسی میگیرن که دعوی چیزی زیاد داشتن مقامی رو میکنه ولی نداره و نمیتونه اگر کسی بدانه و دعوی بکنه بهش نمیگن مدعی ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست احباب حاضرند، و اعداد چه شدن بارها این مطلب و هم حافظ هم سعدین ها مدعی رو ونی دروغ زن به عنی لاختن به عنی کسی که اهل مقامی نیست و دعوی میکنه که اون مقام هست میگن با, با توجه به عنی شه روشن میشه مدعی یعنی آدمی که به از این مقامات گذر نکرده بود این احوال رو درک نکرده بود خواست که آیت تماشاگر راد خب خلصه اولا اما دست قیب هم اینجا من یه مطلبی بگم براتون که این جالبه. خب دست قیب اضافه استعاری است دستی که نبوده که مراد این است که غیبی یه چیزی روز مثل این که میگن پلانکست به تیر غیب گرفتار شد خب این تیر که نیست ولی یعنی صده می نکرد دست غیب هم داره. باره من نمیدونم که پیش از حافظم این ترکیب دست غیب آمده در شعری یا نیامده این باید گشت و پیدا کرد ولی به هر حال معروف تر این جایی که هست اینجا دست غیب یعنی آمل غیب ولی یه خانواده یه سلسله سادات شیرازی هستن که محروفن به سادات دست غیب و از میونه محروفترینشون یکی اون آیت الله دست بود که یک کسی آمد با نارنجک و بغلش کرد و منفجرش کرد یکی هم عبدالله دست غیبه که چیز از همون خانواده است منتقد شعر و ایناست و شاعر و باگه کتاب درست کتاب نوشتم رد پای این خونواده رو بنده تا دوره تیمور دارم دوره پیری خواجه اینا وجود داشت و اسم کسی رو اگر اشتباه نکنم برای اینکه تکر نصراوادی رو من حتما چه سال پیش خوندم و بعد دینا. گویا در تذکر نصرابادی بوده اسم یه سیدی رو میبره و هر حال در یکی از کتاب احتمال قوی تر در تذکر نصراباد یه سیدی رو میبره میگه سید فلان دست غیب. این از احباب یعنی از نواده های سید فلان دست قیبه که در دوره تیمور بود و علت نامی شدن اینا به این آب دست این است که تیمور این سید خاص و از او شجر نامه خواست شجره نامه را انسان میدونه که چیه چی میگن به فرانسه میگن جنیالوژی تا همین یه خورده کج کنن آدم ذهنش چیزی نمیگیزه مشکلی نیست عرض کنم جنیالوژی مثلا عرض کنم که شجره ها و معمولا ساده معتبر اینا شجره دارن که به چه ترتیب به پشت به پشت میرن و پدر بر پدر تا به کلومی که از اهم نمیپیان سید منسوی یعنی اولاد حضرت مصطفی جعفر سید عزتی یعنی از اولاد امام رضا است علاوه سید حسینی سید عزتیان با امسال اینا میگه تیمور این سید چون خیلی موجه بود و خیلی مورد توجه مردم بود خاص و شجره از اون خاص شجره نداشت دستی از قجره و از شجره رو آورد تیمور این دلیل این خانواده شده درثی خود پیدا است که افسانه علی ولی تصور میکنم که از همون روزگاری که خاجه این ترکیب دستغیب رو ساخته همین افسانه هم براش برای اون سیدی که معاصر خاجه بوده ساخته شد و ولی اینجا دستغیب عرض کردم ترکیب استعاری است دستغیب آمد و بر سینه نامهرم زد یعنی بدون اینکه کسی متوجه باشه اون نامهرم نرسید به اینجا که پاش به تماشاگر را نرسید و این درست از اینه تقریبا همون مسئله لنترانیست که موسا گفت خدایا یک نظر اجازه بده من تو رو ببینم و خداوند گفت هرگز مرا رو نخواهی ولی به این کوه نگاه کن وقتی که خداوند بر کوه تجلی کرد برم موسا بیهوش شد و کوه پار پارش این برای این است که اینا هنوز آماده برای دیدار نشده بودن و حاطف اثمانی تون ترجیبندش میگه صد لنترانی لن, لن نفی عوده یعنی هرگز منو نخواهید میگه صد رهب لنترانی ارگویند باز میدار دیده بر دیدار یعنی برو خود باز سحمت بکش باز کار کن تا و آماده دیدار یار بشی اینجا مدعی چون اون مقامات رو تی نکرده بود و بدون صلاحیت میخواسته تماشاگه راز بیاد برو محروم کردن نگذاشتن ندید نتونی سوید قصه بی تحصیل در این مطلب. دیگران دیگران قرعه قصفت همه بر اشت زدن دل غمدیده ما بود که هم بر غمدن از بله همه بگم که این هم و غم دوتایی یه وزن داره دیگه، اول یعنی موزیک داره به قول این دوم این که هم یکی به همون معنیست که الانم میگیم که من هم شمال دیدم دل غم دیده ما هم یعنی او فقط به غم پردا یکی هم کلمه هم به معنی همت. که در قرآن هم آمده که معنی و میل شدید و اراده اصلا شدید برای کاری میگه دیگران قسمتی که براشون تعیین شده بود همه عیش بود اصلا عیش به معنی زندگی تقلی. با معاش و معیشت از یه هست معاش و معیشت که معنی خوشبزرونی نمیتونه ولی عشت در این حال که من در نزد فارسی زبونا استلاح شده برای خوشگذرونی چند که میتونید سعدی میگه ماهی عشت آدمی شکمه چون به تدریج میدود چرا و اینجا قرعه ای قسمت همه بر ایش دادن اینجا خارج عشت گذشد در ماهال قم بنابراین یعنی شادی یعنی خوشگذرون میگه دیگران همه نصیبشون ایش بود حالا میتونیم بگیریم دل غم دیده ما بود که هم بر زد یعنی حمت خودشو بر غم چیز که مخصوص کرد و فقط به غم همه با تشدید بگیریم با لفظ عربی هم میتونیم که هم بگیریم همه همه فارسی اونم هم معنی میده درست و قطعا حافظ بی توجه این مطلب نبوده یکی از دلایلی که من میگم که ممکنه اون همه با تشدید باشه برای اینکه کلمه غم عربیست و او هم تشدید داره یعنی غمه به هم دلیل جمعش میشه قوموم. و آدم زده رو باشید مقموم که مقموم رو شنید بنابراین غمه وقتی او تشدید داشته باشه تصور این که خواجه متوجه اینم بوده که همم هم با تشدیدش هم معنی داره و به اینجا میخوره بیشتر تحقییت میشه که هر دور خاجه منظور نظر داشته جان اولوی حوست چاه زنختان تو داشت اولوی یعنی مال مقام بالا در مقابل سفلی سفل یعنی پایین اولو یعنی بالا جان اولوی یعنی جان مال اون مقام دیگه گفتم که میگه چنین کفخت نه سزایه چون من خوشالهان هیست رویم به گلشن رزمان که مرغ آنچه منم جان در قرآن هم هست که فعضا سب ویتوهو در مورد قصه آدم این که فعضا سب ویتوهو و نفخت و فی همن روحی بقع او لهو ساجدی. میگه ملائکه میگه که وقتی که من او رو درست کردم و از روح خودم روحی یعنی روح من این آیه قرآن یه و از روح خودم در او دمیده بنابراین با هر بشری یه پرتوی از ذات حق هست و جان رو مظهر ذات حق میدونه جای دیگری به فیغمبر خطاب میشه باز در قرآن کریم که یست که عنه روح درباره روح از تو سوال میخونه قول روح هم امر ربطی بگو که روح در امر خدای منابراین جان که همون روحه اولویس مال عالم بالا حوث چاه زنختان تو داشت یعنی میخواست وسازه در این حال توجه کنم که در استلاح صوفیه ظلف رو کنایه استفاد جلالی خدا منده یعنی حالات سیاهی و قهر و قلبه بود این حالات زلف رو کنایه صفات جلال میدونن و رخسار رو کنایه از صفات جمال زلف معشوق کفر زلف میگه کد حافظ چی اومد؟ آمد و رخساره برف روخته بود تا کجا باز دل قمزدی سوخته بود رسم عاشق خوشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر او دوخته بود کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل در رهش مشعل از چهره برفت کن زلف رو مظهر صفات جلال خداوندی صفات قهر و جلال خداوندی و رخسار رو مظهر صفات جمال میدوند میگه جان حوث صفات جمالی رو داشت ولی خب صفات جلال هم بود باید با اونام کنار میوند که دست حققیه آن زلف خمن در خم کرد. آخر روی اون کلمه آن روز باید تکیه فصل بشه. حافظ آن روز طرف عشق تو نوشت که قلم بر سر سفال دیله خورنمگه اول. حافظ روی اسباب دل خرم یعنی وسائلی که موجب شادی دل میشه اول خط کشید بعد نشست طلبنامه ای عشق تو رو بنویسید. بعد در راه عشق ایرپانی و اون گفتیم گفتیم که ترک است و طلب است و از همه چیز برخواستن بنابراین صحبی اول باید از همه چیز برخیزه بعد بیاتون این راه همینه میکره بیگه اون روزی حافظ تربنامه اشکتو رو نوشت که قبلن اسباب دل خوردم روش قلم باطل کشیده بود پس رو آن روز خیلی شدید حافظ آن روز تربنامه اشکتو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خوردم